با پی بردن به شعور الهی پی به وجود خودش هم میتونیم ببریم. اون شبکه هوشمندی اسمای مختلفی داره. ما اسمشو گذاشتیم شبکی شعور کیهانی. به دلیل اینکه یک موضوع انسان شمول. یعنی همه ی انسان ها در هر گوشه دنیا میتونن اتصال به این بخش رو انجام بدن. نام های دیگر این هوشمندی روح القدس جبرائیل روح الامین کارگزاران الهی به یا،, یا هر نام دیگری شاید در ملیت‌های مختلف هم در مذاهب مختلف هم اسمای مختلفی داشته باشه وقتی که گفته میشه جبرائیل نازل شد یعنی آگاهی نازل شد در اصل عامل انتقال آگاهی هستند حالا چه ما اونو یه واسطه رو بدونیم به عنوان یک حامل چه خود آگاهی انتقال پیدا کرده باشه بنابراین این مطلب که ارتباط مستقیم با جبرائیل مفهوم نداره به خودی خود مفهوم نداره ما میگیم یا آگاهی گرفتیم یا نگرفتیم آگاهی گرفتیم معلومه که با کجا آگاهی گرفتیم این بحث پرسش و جواب بحث چارچوب آگاهی است که همه باید تجربه کنند و این یک مقوله عجیب غریبی نیست و یک ماجرای است که انسان مجهولاتی داره و قرار بوده که این هوشمندی همه این مجبولات مجبولات ما رو به ما بده نه اینطوری خود به خود ما اشتیاق نشون بدیم او به ما بکه اونی است از قراره که ما بخوانیم بخوانیم با کیفیت با کیفیت خاص خودش نه هر کسی تا یک کلمه گو بگم بفرما کیفیت میخواد ولیزا حالا ممکنه که توضیحات آمیانه این روی این مسئله گذاشته بشه که خب با کلیتش خیلی موافق نیستیم که پرزن گفته بشه که با جبرائی نه ما اعتصال با بندی در ارتباط هستیم و اون چی رو که داریم و می دونیم و این ها همهش از این حوشمندی است مثل این که ما بگیم با روح القدوس در ارتباطیم با هستیم با جبرائیل در ارتباطیم خب هستیم خب یا بیایم یه اسم اکادمیک بذاریم که در تمام دنیا قابل فهم باشه با شبکی شور کیهانی در ارتباط و اتصال هستیم یکی میگه نه میگه خب بیا ببین درست شد یا نه؟ این تئوریش این هم عملش، بغلش خوابیدی و در واقع به سادگی میشه این اتصال رو فهمید و درکش کرد و نه تنها تماشاچی نبود بلکه خودمون هم بهش بپیوندیم ازش استفاده بکنیم یعنی در اینجا به دنبال اتصال و به دنبال آشنایی عملی با شور الهی فرد پِی علت و چگونگی ماجرا پی میبره و کیفیت این ماجرا رو قادر میشه که روی مسئله پیاده بکنه. اما در تا زمانی که روی پله اشراق قرار نگرفته هر آن دنبال اینه که چجوری حالا اینجا سر خدا رو کلا بزاره حالا اینجا رو یه جوری ازش دیار بره اون رابطه دل که معرفی شد سر خدا کلا گذاشتن میره کنار تکلیف، رف تکلیف میره کنار جاشو چی میگیره؟ جاشو دل میگیره جاشو بحث عشق میگیره حالا کاری که از روی عشقه با کاری که از روی شهر و به آوردن تکلیفه چقدر فرق میکنه؟ خب مثلا اون نماز خونده میشه عاق مصطلات مقییم اتصال شدن انجام میشه. آیا کیفیتاش یکسانه ؟ مسلما نه. چه چیزی تعیین میکنه کیفیت های سلات افراد مختلف رو. دلشون، اشکشون، یه کسی ممکنه وارد این سالات بشه؟ نه تنها مقیم نباشه؟ بلکه در خلال اون، 10 تا ماملهم انجام بده ده جام بره بیاد و خب بعدش میگه من که خوندم یه نفر دیگه هم با دلش این کارو کرده با کیفیت بسیار بالایی جپتشون ظاهرا انجام وظیفه کردن اما شما فرق قائل هستید یا نه پس اگر بخوایم کیفیت بدیم از عرفان نمیتونیم جدا باشیم لذا عرفان جدا از اخلاق نیست جدا از ثواب و گناه نیست همه اونا رو داره و میبینیم اون چی رو که در راستای کمال تعریف میشه مثل اخلاق مورد بررسی قرار میده مونتا در اونجا توصیه میشه این کارو بکن اون کارو نکن اون کارو بکن اون کارو نکن در اینجا نهادینه نمیشه اون عشق باعث میشه که این نهادینه نمیشه مثل مثلا یه نفری که ارزشی برای معلمش خواهله که واقعاً درقوالون اون نمی نمیکنه، ولی یه نفر ظاهری این کارو میکنه یعنی ظاهرا هر گوش به حرف معلمش میده ظاهره ولی یه نفر اونقد آشق معلمشه که معلمش هر کار میگه انجام میده. این دوتا فرق میکنه یا نمیکنه پس اون رابطه ای که بر اساس دل و عشق داریم دنبال میکنیم و این رابطه اخلاق رو حتی در بحث گناه ما تعریفای خیلی دقیق‌تری داریم که بیرون شاید صد عامه روش کاری نداشت باشن اون چیزی که به عنوان مثال من خدمتون بکنم تششور منفی ایجاد بکنه به طور کلی توی این قضیه گناهه مثال بزنم خدمتون شما یه سوالی از من میپرسید من نمیخوام شما جواب بدم در این رابطه از نظر عرفی من گرفتار نیستم نخواستم جواب بدم مثلا از من میپرسید اینو کجا خریدید من نمیخوام شما جواب بدم شروع میکنم شما رو به پیچوندن تو. خب، از نظر عرفی گیر نیستم میان حق نخواست بگ. از نظر شرعی هم گیر نیستم میان نخواستم بگم. از نظر قانونی هم گیر نیستم اما در دنیا عرفان گیرم چرا چونی لظ که میخوام شما رو بپشونونم میام تو فاز منفی فاز منفی تششوه منفی داره. خب اینا اصطلاعات هست که کسانی که این عرفان رو دنبال میکنن باش آشنا میشن آشنای عملی پیدا میکنن. تششوه منفی داره تشاشش منفی در ایران گناهه. توجه دادم پس گناه توی زمانی که کیفیت میخواد مطرح بشه با یک بزرگ نمایی خیلی بیشتری مورد بررسی قرار میگیره. و دقتی داره که الله شما انشالله بیشتر با مسئله برخورد بکنید. میشید. مثلا ما تسکیه یه داریم یه تسکیه رفتاری داریم اینجور برو، اینجور بیا، اینجور بیا، خب، ما اینو یه بعضیست که خب همه میدونن اما ما یه تسکیه تششواتی داریم یعنی یه نفر در وادی ارفان تششو منفی نباید داشته باشه حالا شما ببینید که یه فرد معمولی از صبح تا شب چقدر تششو منفی داره دروغ میگه قیوت میکنه میپیچونه و, و و و و و ببینه چقدر اینا همه تشش و منفی داره سبب اون چیزیست که انسان رو به کمال میبره گناه اون چیزیست که انسان رو ساقت میکنه در کتاب مقدس عد عتیق داریم که ما شریعت رو بر قلب شما خواهیم نوشت و انسان امروز داره به این مسئله نزدیک میشه که متوجه میشه ثباب چیست، گناه چیست عرفان با وجوده نه آبیزون است، نه دست کردنیست و هیچ چیزی نیست که ما با حملش بتوانیم برای خودمون چیزی رو ایجاد بکنیم یا جزء وجود ماست، یا جزء وجود ما نیست بنابراین حمل کردنی نیست و به ظاهر هم نیست و یاد بگیریم بحث کمال ارتباطی به ظاهر افراد نداره بحث و حالا توی بحث‌های کلاً معرفتی حتی غیر معرفتی هیچ ارتباطی به ظاهر افراد نداره و در واقع این مسائل ممکنه که در جایی کمک بکنه به اینی که عوام فریبی های صورت بگیره مسائلی روخ بده که در واقع افراد رو از اون محرفت ها دور بکنه و در واقع ما همیشه این مشکل رو داشتیم مشکل مورید و مراد، مشکل توجه ظاهر یا ظاهر پرستی این مشکل ها رو همیشه ما داشتیم باش مواجه بودیم خب در یه جایی باید خاتمه پیدا بکنیم از اشکالاتی که این دیدگاه فراهم کرده و همیشه شرق دست به گریبانش بوده مسئله مورید و مراد است و این یکی از مشکلات شرق بوده که بحث مورید و مراد بحث اینی که باید مورید وابسته به مراد بشه سر سپرده بشه و هزار تا از این مسائل دیگه در حالی که ماجرای کمال به هیچ کدوم از این چیزا نیاز نداره یکی آگاهی داره باید به مارزقناهم یونفقون از اون چیزی روزی آسمانی داره انفاق بکنه و فرد گیرنده هم لزومی نداره که مورید او باشه لزومی نداره که سرسپرده او باشه هر روز دلش خواست میاد، هر روز دلش نخواست نیا